ا وستویه کشتی خشنا وتر حورای مزدا ومتا روخته واشت یا زمایده رزشتیا چیستیا مزدا داتیا اشاونیا دائنیا ماز دااسنوش ع وست دو تا او جایی مدا انگ ها چاو یاورشا تواچو ایسای چاو دا تا انگ حیوش ردت و مننگ ها، حیثیو و اشتاوم هیت و اصناو فرشاو تمام ستاومی اشم اشم و او و هشتم اصدی و یتاو اهو ویریو اتار اتوش اشاو چیده چاو ونگه اوش دزداو مننگه شیاو ترنام انگه اوش مزداوی خشترم چاو اهو یم دریگو بیو ددت واسدارم یتاو اهو ویریو اتار اتوش اششا چید هچاو و انگه اوش جزده مننگهو شیعو تننام انگه اوش مزده خشترم چا اهو رای آیم دیری گو واسدارم اشم اش و هو و استی اوش داو استی اشتاو احمایی یدشاوی و اشتاویشم مزده یسنو احمی مزده یسنو زرتو شریش فروران آستو تسشاو فرور تسشاو آستوی حومت منو آستuye هوکتم وچاو آستuye واستم شیاطانم آستuye دینام ونگویم ماو زدیس نیم فرسباویاو خزراو نیز آست نایتیشم خیت وداتام آشونیم یا هایی تینام چاو بوشی این تینام چاو مزیشتاو چاو و ایشتاو چاو سرشتاو چاو یا آهوی ریش ذرتو شرش اهورایی مزدایی ویسپاو بهو چی نحمی عیشاو استی دین یاو مازده نویش جسم اوه انگه مزداو جسم اوه انگه مزداو جسم اوه انگه مزداو, او انگ مزداو عشم و هو و استی او استی استی قشتاو احمایی هیدشاوی و هیشتاوی عشم هما زور بیم هما زوره هما عشو بیم هما زوره ویش کرفه بیم هم کرفه چرف کاران بیم دور از وناهو و وناکاران بیم هم کرفه بست کشتیانو و و هفت کشور زمین بیم به خوشنودی تو عیدادار ارمزد اتا جمعیات یتا آفری نامی عشم و هو و عشتم استی وشتاو استی وشتاو احمایی یدشایی vai istawi asham